ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الذين يقفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سروران عزيز وخزار بسيار أرجمند وقرامي آيه رأز قرآن عزيم الشام خدمت شما تلاوت کردم دعا بفرمایید که الله تبارک و تعالی توفیق بیان حق به بنده و توفیق عمل به همه من شما الله تعالی عنایت بفرماید الله رب العزت برای جامعه بشری با بأساته حضرت رسول صلی الله عليه وسلم دین اسلام را به عنوان دستور زندگی انتخاب کردند و قرآن عظیم الشان را به عنوان قانون اساسی قوم وجزئی جاودان نبوت محمد الرسول الله صلی الله عليه و بر حضرت نازل فرمودند و بعد از اون به عنوان خیر امت و بهترین انسانهای روی زمین در بین سایر انسان امت اسلامی را بعد از حضرت صلی الله علیه و سلام وارثین عظیم الشان قرار داد دعا بفرمایید که الله تبارک و تعالی تا آخر حیات و تا آخر عمر دست ما را از دامن محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و از تعلیمات بار قرآن عظیم الشان کوتاه نگرداند اینکه برادر عزیزم یاداوری کرد که دانمارکی ها چنین تصمیم گرفتن این اولین بار نیست و آخرین بارم نخواهد بود علت هم دارد در یک مکتی انگلیسی ها هم همین تصمیم را گرفتند وقتی انگلیسی ها هندوستان را اشغال کرده بودند اونها هم به طبع اون وزیری که در مجلس عوام انگلیس گفته بود تا زمانی که ما قرآن را از دست مسلمانها نگیریم ما بر مسلمانها ها مسلط نخواهیم شد و فرمان روایان نابخرد اونها عاملان و مجریان نادان اونها در هندوستان تصور کردن که گرفتن قرآن از دست مسلمان اینه که قرآن را یا آتش بزنند یا قرآن را در دریا بریزن و اقدام به همین کار هم کردن دستور دادن که قرآن ها را جمع بکنند و داخل دریا بریزن اما بعد متوجه شدن که دارن اشتباه میکنن اگر این آراق را تعمه حریق بکنند یا این اوراق را توی دریا بریزند قلوب مسلمان ها را میخوان چکار بکنند رابطه مسلمانان با قرآن یه رابطه انسان با یک کتاب رمان العیاز بالله خاکم بردهن نیست رابطه یک مسلمان با قرآن عظیم و رابطه یک کتاب و یک قصه نیست رابطه مسلمان با قرآن رابطه اعتقاده قرآن در مغض مسلمان وجود داره قرآن در قلب مسلمان وجود داره قرآن در زندگی مسلمان وجود داره قرآن در عمل مسلمان وجود داره قرآن در دل, دل اطفال مسلمان وجود داره اونها دردشون بر اینه که چرا قرآن عظیم و داد جهاد، داد مبارزه با ستم، داد مبارزه با نفس پرستی، داد مبارزه با خود پرستی را چرا میزنه؟ چون خیلی از عیاشان دنیا میخواهند در مسیر عیاشی خودشون، در مسیر نفس پرستی خودشون، در مسیر لذت پرستی خودشون مانعی نداشته باشند، و تعلیمات قرآن عظیم و را پیش روی خودشون مانه تصور میکنند و ولی سروران گرامی از دشمن جای گلایه نیست گرچه مجامع بین المللی باید بدانند که عواقب شوم این عمل اونها گریبانگیر اونها خواهد شد این بیایند به مقدسات مسلمان ها اهانت بکنن قرآن عظیم الشان را مورد توهین و مورد تحقیق قرار بدن این عجز اونها را می رسونه یک روزی هم در محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلام مشرکین وقتی از استدلال عاجز شدند مشرکین از مقابله با قرآن عظیم الشان عاجز شدند. قرآن به انها گفت که فاتو بصورت من مثله ودعو شهدائكم ان کنتم صادقین وقتی از این ندای قرآن عاجز شدند نتوانستن کلامی مثل کلام رب العالمین بیارن به مکرو به و به حیله دیگری متوسط شدند. وقفتاً لا تسمعوا لهذا القرآن والغوف فيه لعلكم تغلبون نداي قرآن رقوش نديد وقتي حضرة رسول صلى الله عليه وسلم قرآن تلاوت ميكنات وقت حضرة أبو بكر صديق عمر فاروق رضي الله تعالى عنهم قرآن تلاوت ميكنات لا تسمعوا لهذا القرآن إن قرآن رقوش نديد اگر به محفل قرآنی رسیدید اگر به مجمع مسلمین رسیدید ولغوفیه لعلکم تغلبون اونجا آشوب ایجاد بکنید اونجا سر و صدا ایجاد بکنید اونجا توطعه بکنید لعلکم تغلبون شاید شما پیروز بشید این مکره دشمنان قرآن دشمنان بشریت در دوران جاهلیت بود اون مکره دشمنان جامعه بشریت در دوران تسلط انگلیس ها بر هندوستان بود و امروز این هدیه غربه که یک روز میآید بم در منطقه ای می ریزد. یک روز قتل عام می کند و روز دیگری متوصل می شود به اینکه که بلاخره قرآن عظیمشان را العیاز بالله خاکم برده هم به آتش بکشد این این برای گرچه به ظاهر برای ما درد و اسفناکه اما این دلیل شکسته های مادی است مکتب های مادی و غرب دنیا پرست و مادی پرست می که آب به بومبست رسیده مانند بلا تشمی بلا تشمی مانند حیوانی که هار باشه مثل سگ هار که به هر چیز حمله می کند و دهن میزند اینها امروز هر شدن سروران گرامی و کار بجائی کشیده که در دنیا متمدن امروز که دنیا همیش داد حقوق بشر میزنه و داد حقوق انسان ها میزنه و حمایت از حقوق اطفال و یه روز شعار حمایت از حقوق زنان و روز حمایت از حقوق کارگر و هزاران شعار دیگر امروز کارشون به کشیده که خود را در انزوا میبینن و در مشکل میبینند و میگوند آه شاید ما عقده اغدهشون را، کینهشون را بغضشون را میخواند با آترستادن اوراقی که قرآن عظیم اشتران تویش نوشته میخوان اینجوری اغدهشون را خالی بکنند و من وقتی این قصه را شنیدم بیاد خاطره افتادم یه زمانی یکی از نیروهای اطلاعاتی آمده بود خدمت حضرت مولانا و گفته بود ای مولوی توی دستشویه های مسجد فرش نوشته مولانا گفته بود این افتخار ملت ماه که زده انقلاب دیگه هیچ جایی نداره به دستشویی پناه برده حالا هم این عزت مسلمانانه که دشمن به بمبست رسیده و اون مکتب فکری که ادعا میکنه کنه می جامعه بشری را نجات بده اون مکتب فکر امروز به بومبس رسیده و زبونانه و حقیرانه و زلیلانه برخلاف همه اصول انسانی و بین المللی داره خودش در یعص و سرخوردگی بینه و میگده اول قرآن عظیم و را علیه عزبالله به آتش جواب دندان شکن اینکار چیه سروران گرامی؟ جواب اینکار اینه که مسلمانان به قرآن بگرایند مسلمانان بیشتر به قرآن توجه بکنند عزیزی یه جایی در زندانی بوده و محاسن داشته و بالاخره زندانبان می آید خطاب به او میگه آه این چه ریشیه که گذاشتی این بزرگوار گفته که شما از این ریش من خوشتون میاد یا بد میاد گفته بدم گفته گذاشتم این ریشه که تو بسوزی مسلمان اگر اینجوری عمل بکنه و به دنیا بفهماند که من امروز همون افتخاری را به قرآن عظیم الشن دارم به احکام الهی دارم به دستورات رب العالمین دارم که محمد رسول الله به افتخار میکن من امروز همون تعهد را به قرآن عظیم الشن دارم که ابو بکر صدیق داشت همون را که علی مرتزاد داشت، همون را که حضرت عثمان و عمر داشتن همون تعهدی را که و زبیر داشتن همون تعهدی را که فاطمه و عایشه رضی الله تعالی عنهم داشتن مرد مسلمان زن مسلمان دختر مسلمان پسر مسلمان پیر مسلمان جوان مسلمان عالم مسلمان و عامی مسلمان همه و همه یک صدا بگن ا قران عظیم الشان الگوی ما ان هاذا القران يهدي للتي هي اقوام این قرآن انسان را به صراط مستقیم این قرآن انسان را به عزت این قرآن انسان را به آسایش و به رفاهمی رساند اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِ لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمْ وقتی که مسلمانها اینگونه عمل بکنن سروران گرامی همه بشریت والله العظیم به ها اقتدا خواهد کرد و تسلیم تمدن دینی تسلیم تعليمات گوهربار قرآن عظیم الشان تسلیم آین سرفراز و آین سربلند اسلام خواهد شد لازماش اینه که ما مسلمان ها عملمون را اصلاح بکنیم اونطوری که مسلمانان صدر اسلام تجار عزیز وقتی رفتن در اسپانیا با تجارتشون با اخلاقشون با سیاست صداقتشون با افت و پاک دامنیشون با اخلاقشون با تعاملشون مردم اسپانیا را مسلمان کردن از اون ذلت نفس پرستی و از اون دین محرف اونها را بیرون آوردن و به دین اسلام اونها را گرواندن و اونها را متصل کردن امروز شما وارثان اون نبی وارثان اون امت گذشته وارثان اون مجاهدین و وارثان اون شیران ارزم که میدان روز و زاهدان شب هستید باید اون میدان را حضرت مفتی محمد شفی رحمه الله در کتاب زیبا و ارزشمند معارف القرآن که حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف حفظه الله تعالی جزای خیر عنایت بکنه این کتاب رو به فارسی ترجمه کرده من همینجا جا خدمت تک تک شما عزیزان توصیه میکنم که یک جلد همونطوری که مسلمانان پاکستانی روزی که معارف القرآن چاپ شد و در میدان آمد مسلمانان پاکستانی در جهیزیهی که برای دخترانشون می دادن که به پسرانشون میدادن، یک جلد و یک دوره کامل از معارف القرآن را می گرفتن و در جهیزیه دخترشون می گذاشتن خوش به حال این مسلمانان خوش به حال این پدر و این مادر نکنه ما در جامعه امروز وقتی زندگی فرزند را تأمین بکنیم به فکر تلویزیون باشیم به فکر و تو برایش باشیم به فکر لوازم سایر و لوازم خانگی را برایش تهیه و تأمین بکنیم و بگیم آه قابلمه مونده غاشق و چنگال مونده ولی اینکه این دختر این پسر با دین با قرآن عظیم و شان با تعریمات گوهربار محمد رسول الله با میراس گران مایه و با اون عزت دینی خودش چه اندازه عشناییت داره این را فراموش بکنم زمان توصیه میکنم که همه ما به عنوان جهیزیه به عنوان ارسیه به عنوان هدیه یک دوره کامل از معارف القرآن را بگیریم و در خانه فرزندانمون بگذاریم به عنوان صدقه جاریه که این فرزند با قرآن با الفاظ قرآن با محتوای قرآن با معانی قرآن از مشان آشنایی داشته باشد حضرت مولانا در معارف القرآن نقطه ای را اشاره کردن و مطلب را بیان کردن و فرمودن که آگاه مسلمان گلایه میکنه که آ چرا دعا قبول نمی شود چرا رحمت های رب العالمین به سراغ مسلمان ها نازل نمی آیند و چطور بود که در بدر در هنین و در احد این نصرت الهی این کمک های پروردگار و این فرشتگان الهی به کمک مسلمانان آمدن امروز کجا هست مولانا شعر اردوی نوشته و ترجمه اینه شما فضای بد را ایجاد بکنید و انتظار نصرت بدری داشته باشید اون مسلمانانی که در بدر دست را بلند کردند و مقتدی محمد رسول الله بودند اونها چه اندازه به قرآن عظیم و شان عامل بودند رضا آیه ای را که خدمت شما عزیزم تلاوت کردم در این آیه الله تبارک و تعالی در این آیه و ادامه این آیه مسلمانان را به دو گروه تقسیم میکنه یکی انسان های اهل حق انسان های مطیع انسان های فرمانبردار و یکی انسان های اهل باطل انسان های ناشکر انسان های متمرد انسان های سرکش الله تبارک و تعالی در این آیات هم صفات انسان های نیکو و والا مقام را بیان می کنه هم صفات انسان های منکوب و بدبخت را بیان میکنه هم سرانجام و عاقبت این دو گروه را بیان میکنه در قرآن عظیم الشان ولذا عزیزان گرامین دنیا هر اندازه متحول بشه دنیا هر اندازه پیشرفت بکنه دنیا هر اندازه متغیر بشه برای مسلمان یک اصب وجود داره اون اینکه ان نهاز القرآن یهدی لطهی اقوام مسلمان باید همیشه الگوی زندگی خودش دستور زندگی خودش آین زندگی خودش قرآن عظیم و را قرار الله تعالی در این آیه انسان های مطی و فرمان بردار اینجوری معرفی می کنه بیفرواید الذین یوفون بی عهد الله مسلمان کسیست ك أهدي خدار الرعاية لكم. تؤين الذين يقفون بأحد الله حد أقل ستة أهدي خداي تبارك وتعالى داخله يك أهدي خداي خدا كدر. قرآن عظیم الشان هم به او اشاره شده و در روایات هم به او اشاره شده قرآن عظیم الشان نسبت به اهدی که انسان ذاتاً با ذات رب العالمین ذات انسان با ذات خدا یک عهد داره و اون اهد اینه که الله تعالی در قرآن میفرماد فرمد علستو بربکم قالو بلا خدای تبارک و تعالی نسبت به وحدانیت خودش نسبت به ذات خودش نسبت به صفات خودش از انسان در عالم اروا و در عالم خلقت که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن که الله تعالی همه انسانها را خلق کردن و انسانها انقدر این جمعیتش را بود مانند مرچه هایی که یه جای تجمع میکنن همه همه هایی که از آدم تا آخر دنیا میخوان متولد بشن اون هایی که متولد شدن و اون هایی که در آینه متولد بشن، همه و همه در یک اهد الله تبارک و تعالی جن این اهد را گرفت که الستو بربکم من خدای شما نیستم من رب شما نیستم رب معنایش اینه اون ذاتی که همه نیازهای یک موجود را برای او تضمین بکنه از همه خطرات او را آگاه بکنه و همه امکانات رو برای او فراهم بکنه همه مشکلات را از سر راهو دور بکنه به معنی پرورش دهنده فارسی در ترجمه رب را ترجمه می کنن پرورش دهنده برای پرورش یک درخت لازمه که به او آب برسه لازمه که به او نور برسه لازمه که به او حرارت برسه و لازمه که حراستش بکنن لازمه سمپاشیش بکنن لازمه اون اسباب رشد را برایش فراهم بکنه موانع رشد را از سر دور بکنه بین این میگم پرورش الله و تعالی وعده گرفته در قرآن عظیم الشرم ذکر کرده این وعده را که الستو برب بکم آیا من رب شما نیستم قالو بلا قرآن میفرمد همه این عهد را ولذا چه انسان مسلمان که امروز به وحدانیت رب العالمین ایمان آورده و خدا را به یگانگی قبول داره و خوشا به سعادت او و چه انسانی که کافره و بیچاره هنوز به راه سعادت نرسیده همه و همه انسان ها در این داخلن. الستو بربكم. قالو عهد داخلا ادستو بربکم قالوا بالا الذين يوفون بعهد الله مؤمن و مسلمان و انسان راستگار و انسان مورد قبول پروردگار انسان مورد پسند و مورد رضای پروردگار الذين يوفون بعهد الله اون یکی که به عهد پرورد. من عرض کردم حداقل سه تا در این جمله داخله احد اول عهد انسان بخدا أهدي أهدي با خدا در رابطه ذات رب العالمین در رابطه با وحدانیت رب العالمین عهد دوم انسان با برای اطاعت از انبیاء والسلام چون رابط انسان بین خدا و بین سایر انسانها رابط انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام و انبیاء والسلام اون چرا که به ابلاغ اون دستور الهیست به همین خاطر الله تبارک و تعالی وقتی انسانها را توصیه به اطاعت خودش می کند من می الله در کنار کو می فرماید و عطیع الرسول در جایی که خدای تبارک و تعالی بیان میکنه کند که انسانها طالب حب خدایان، طالب رضای خدایان، طالب انعام خدایان و انتظار دنگ الله تبارک و تعالی انها را مورد شفقت قرار بده، مورد محر و محبت قرار بده، مورد انعایت و نصرت قرار بده انجا بیان کن قل این کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکنون الله. اگر شما ادعای دوستی و خدا را دارید ادعای رابطه و الله را دارید فاتبعونی قرآن يفرميات محمد الرسول الله را اتاعت بكنيت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله شرط نصرة إلهي شرط اناية فروردگار شرط مرحمة رب العالمين اتاعت مطلق از محمد الرسول الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله اطاعت الرسول الله خدای تبارک و تعالی علامت و نشان دوستی مؤمن با خدا و علامت و نشان دوستی خدا برای مسلمان و برای مؤمن این در واقع آینه است یک انسانی میخواهد ببیند سر صورتش زیباست ببیند بر سر صورتش ای قرار نداره ببیند وضعیت لباسش مرتب و منظم هست می‌رفی آینه می‌ایستد اطاعت از محمد رسول الله را الله تبارک و تعالی آینه تمام نمای بیان محبت خدا با مؤمن و محبت مؤمن با خدا قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله اهدثومی که در این آیه به او اشاره شده احادیس انسان ها با یک دیگر داره انسان با انسان دیگه عهد داره که به مال او تعرض نکند به جان او تعرض نکند به آبروی او تعرض نکند آسایش او را به هم نریزد آبروی او را خدشدار در مال او خیانت نکند مال او را با زور بر ندارد با کلاه برداری بر ندارد مال او را با رشوه بر ندارد حق همسر را رعایت بکند حق فرزند را رعایت بکند حق پدر و مادر را رعایت بکند حق همسایر را اینا همه اهدی هستند. همینطوری که در یک منشور اجتماعی در یک قانون اساسی در یک دستور زندگی عمومی قانون بیان میکنه حقوق یک دیگر را حقوق انسان الله تبارک و تعالی به عنوان مربی انسان به عنوان خالق انسان و به عنوان مبدع انسان که از قدرت الهی نشأت گرفته و سرچشمه گرفته و به عنوان مرجع انسان که در نهایت انسان به خدا برمی گردد و قرآن عظیم در این دو جمله بیان فرموده که انسان ابتدا و انتهایت را در نظر داشته باشت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ وقتی یک حادثه مرگ برای انسان پیش می آید یک حادثه نازیبا و یک خدا یاره خدا یاره یک غم و اندو بر کسی تاری میشه. قرآن عظیم و تعلیم داده که آه نگران نباش مستحلق نباش مستحصل نشو انا لله و انا الیه راجعون ما از آن خدایم و سوی خدا برمی گردین الله اللہ تبارک و تعالی به عنوان مبدع و به عنوان منطحای بشر به عنوان مرجع بشر در نهایت او دستور میده که الذين نقفون به الله مسلمان و مؤمن و انسان رستگار انسان سربلند و معزز و کامیاب کسی است که می وقوفون بعهد الله عهد خدا را رعایت کند اون عهدی که با ذات پروردگار داره با ذات او شرک نکند ذات او را انکار نکند وحدانیت خدا را نادیده نگیرد نگوید الایازم الله الایازم الله خدایی وجود ندارد انسان مثل سایر موجودات طبیعی خودش پیدا شده رشد کرده به تکامل رسیده و بعد از اینکه اون غرایز و اون وجودش اون توان غریزی خودش را از دست میده اون پیر میشه و بدن خاصیت خودش را از دست میده مثل سایر موجودات میبینه می و فنا میشه خیلی ها اینجوری انسان را تعبیر میکنن که انسان وجودش مانند یه درخته انسان وجودش مانند یه بلا مانند یه حیوانه او پیدا شده گلچه مسلمان معتقد او را هم خدا پیدا کرده و در قرآن زیبا فرموده خلق علیکم ما فی الارض جمعیه آه انسان این گوسمان خودی خود پیدا نشده بی هدف پیدا نشده این گاغ این درخت این دریا این کوها بی خود پیدا نشدن اینها را من خدا پیدا کردم برای رفاه انسان برای آسایش انسان برای اینکه زندگی طبیعی چند روزه را انسان با توانمندی پوست سر بگذارند، اما خیلی همیشه انسان را هم، انسان مخدوم را با حیوانی که به عنوان خادم و به عنوان اینکه انسان از او بهره بگیرد، این هر دو را در یک درجه قرار میده و میگه هیچ فرقی نمیکنه انسان وجودش و انسان حیاتش و انسان زندگیش بلاتوجهی بلاتوجهی با گفه هیچ فرقی نمیکنه. او هم به صورت طبیعی پیدا شده. مدتی اینجا از این طبیعت استفاده میکنه بهره میگیره و بعد میمیره فنا میشه انسان هم یک وضعیت اینچنینی داره نه الله تبارک و تعالی میفرماید که الذين به اهد الله انسان جایگاهش اینه عقل انسان این را اقتضا میکنه جایگاه و موقعیت اجتماعی انسان برطریه انسان نسبت به سایر مخلوقات این را اقتضام میکنه که انسان مسئولیت پذیر باشه انسان مسئولیت داره و در مقابل این مسئولیت باید پاسخ بده الذین یعفونه به الله قرآن عزیم و شن سروانه نگرامی با مشکل اینه که ما مسلمان از قرآن فاصله گرفتیم. ما قرآن را در حد یک تقدس نامی مقدس میدانیم وقتی یک ملعون وقتی یک کافر وقتی یک انسان سرکش و متمرد نسبت به قرآن عظیم الشران بخواهد جسارتی بکنه خون مسلمان به جوش می آید غیرت مسلمان به جوش می آید ایمان مسلمان به جوش می آید اما خدا نکنه این جوش جوش پپسی باشه ما نسبت به دیگران ابراز احساسات بکنیم ولی وقتی نوبت به خود انسان برسد وقتی نوبت به ربطه انسان با قرآن برسد حالا بگی که اینجا دیگه مشکل هست یک جمله ای خدمتتون عرض بکنم که خواهری خدمت حضرت شیخ الاسلام شکایتی نوشته بود از همسرش ظاهرا اون بیچاره هم مثل خیلی ها گرفتار این امتحان شده بود دارای دو همسر بود و به یکی رسیدگی نمی کرد اون خواهر نام این نوشته بود خدمت حضرت مولانا که شوهر من ببن پیش ما رفت آمد نمی کنه و حضرت مولانا اون سال آدمی معروفی بود مولانا ایشون رخواسته بود گفت که بالاخره جمله اش این بود که جناب مولانا هر اندازه پول بخواهد هر اندازه مخارج بخواهد من پرداخت میکنم ولی به من نگو خونه ای برم این کجای مسلمانی به همین خاطر قرآن عظیم و به ما میگه قد خلوف السلم کاف شما در انجام احکام الهی باید تسلیم محض باشی الَّذِينَ يُقْفُونَ بِعَهْدِ الله آنانی که به عهد خدا پای بندن اجاب جمله زیبایی قرآن عظیم و شان تعبیر میکنه. چون ممکنه یک لحظه انسان در یک فضائی قرار بگیره در یک جدی قرار بگیره و شروع بکنه به بی بیان وحدانیت پروردگار شروع بکنه به نماز خواندن، شروع بکنه به خرج کردن شروع بکنه به کارهای نیک اما همین که این فضا تمام شد اما همین که این جب تمام شد بلاخره همه چیز را فراموش می دیدید حکومت ها وقتی یک کسی را بازداشت میکنن، میخوان آزادش کنن یه وسیقه ازش میگیرن. گرفتن این وسیقه از این انسان معنیش اینه که حالا از زندان رفتی بیرون، ولی در اختیار منی ولی قزون المیساق معنیش اینه که آ مسلمان مسلمان جب نباش مسلمان فضا ن اگر رفتی خانه کعبه چشمت به جلال کعبه افتاد چشمت به عظمت کعبه افتاد چشمت به اون گریه و نیایش انسان ها افتاد تو در دلت جوش آمد سحرخیز شدی تو عبادت گذار شدی اونجا اهد کردی که دیگه رشوه نمیگیرم اونجا عهد کردی که دیگه به آبروی مسلمان خیانت نمی کند اونجا عهد کرد که به معلم مسلمان تعدی نمی کند اونجا اهد کرد که به جان مسلمان حمله نمیکنم ولا اهد خدا را نشکنه اون پیمان را فراموش نکنه فضاره کرد از اون جف آمد بیرون وسیقه داره چیه وسیقه؟ وسیقه جان انسانه روح انسانه وجود انسان در برابر احکام الهی وسیقه است روز قیامت دوباره الله تبارک و تعالی همین جسمی را همین جانی را که انسان برای آسایش او برای استراحت او خدای ناخست نماز صبح را قضا میکنه میگه حالا من خواب دارم بعد بلند شدم نماز را ادا میکنم همین جسم و جانی که انسان میگه حالا هوا سرد نمیتوانم به مسجد بروم. حالا مهمان نشسته چطور مهمان را دلخور بکنم و این مجلس را ترک بکنم و هزاران عذر دیگر الله تعالی میگه این جان این وجود نازنین این میساقه این وسیقه از دربارگاه رب العالمین فردا از این سؤال خواهد شد. وَلَا يَنْقُزُونَ الْمِسَقِ میساق خدای تبارک و تعالی را اهد پروردگار را اون تزمین دیدن که دربارگاه رب العالمین دادند که ذات رب العالمین رب یگانگی قبول بکنه دستورات محمد الرسول الله را اجرا بکنه اهد محلوم را و حقوق ناصر را رعایت بکنه ولا ينقضون الميثاق انا اهل سكني نميكن پیمان سکنی نمیکنن خیانت نمیکنن مسلمان اعتقادین مؤمن اعتقادی چه در محضر خداست چه در مسجد چه در خانه هست چه در بازار چه در جمع نشسته چه در تنهایی نشسته ولا ينقضون الميثاق انا اهل سكني نميكنن انبیاء علیهم الصلاة والسلام اینجوری حضرت یوسف علی نبی گینه و علیه و السلام جوانیست زمینه ای برایش فراهم شده همه امکانات برایش تأمین شده هیچ خوف و خطری هم وجود نداره هیچ کسی نیست صورت را بکنه هیچ کسی نیست نسبت به او تجسس بکنه جوان هم هست در اوج جوانی قرار گرفته بالاترین رغبت هم برش فراهم شده وعده به پست و به مقام و به منزلت هم داده شده و فطرت غلیزی هم تحریک شده اما ولیم قزون المیسا احشکنین در اونجا هم میگه معاذ الله من به خدا پناه میبرم، من خدا را نادیده نمی گیرم خدا را فراموش نمی کنم من آغازم از ذات است، برگشتم به سوی خداست اگر اینجا اگر انسان خیانت بکند محاسبه باید بکنه که آ من وقتی در بارگاه رب العالمین حاضر شدم اون جایی که عزیزانی گرامی وقتی انسان را خدای تبارک و تعالی محاکمه می کنے و خدا همه ایمان شمار را نجات بده خدا نجات بده اونجا انسان عذری نداره تو دنیا ممکنه در پیش قاضی عذر بیان بکنه اما خدای تبارک و تعالی قرآن بیان کرده که یاد بیارد انسان اون روزی را یاد بیارید که اليوم نختم على افواهیم و تکلمونا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسی یاد بیارد انسانا اون روزی را که ما بردهن مهر می زنیم و تکلمونا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسی دست حرف می پا خودش گواهی می ده که چکار کرده و الله اللہ تبارک و تعالی انها در دنیا به ما یاداوری کرده به انسانها یاداوری کرده که آه انسان مواظب باشی اهد شکنی نکنی مواظب باشی پیمان شکنی نکنی مواظب باشی با نفس خودت خیانت نکن و این نفس اونجا خودش خودش شروع میکنه به بیان خودش شروع میکنه به گواهی دادن اليوم نختم علی افوایم و تکلمنا عیدیهم و ارجلهم بما ما صفة أول إنسان رستقار يؤفون بعهد الله دو ولا ينقذون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يؤصي أنت الله تبارك وتعالى دستور داده كأنجام بده علماء أموماً مفسرين بزرغوار در تفسير ودر تبيين معناي إن جملة قرآن عزيم الشام إن مثلا بربيان ميكون كه سلح رحم بکنه خیشاوندی را برقرار بکنه و بعد حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمود سلح رحم این نیست کسی در خانه تو فرزندی پیدا شده کادو آورده حالا شما بعد از یک سال بعد از یکونیم سال برای او فرزندی پیدا میشه شد کادو شو می بری فرزند شما ازدواج قصد ازدواج داشته عزیزی با او بر اساس عرف و بر اساس فرهنگ جامعه کمک کرده به جار بهش داده حالا ده سال گذشته، پونز ده سال گذشته. این آقا میخواد فرزندش را ازدواج بده اون میاره اون بدل اون وا میده در واقع اون به که داده این بهش میده اگر نه برادرش برادرزادهش پسر اموهش خوهرزادهش همسایهش خیشاوندهش تو ری دسته یه روزی هم دورانی داشته یه روزی هم مال داشته ثروت داشت، اما اون روزی که اون دوران داشته اون روزی که او مال و ثروت داشته بین بی آقا توجهی نکرده حالا قران میفرنه تلک الايام و نداو له الناس گاهی من وضعیت رو عوض میکنن نه و ثروت برای همیشه در دست کسی است نه آفیت و سلامتی برای همیشه در دست کسی است نه توانگری و قدرت همیشه, برای همیشه در دست کسی است تلک الايام و نداو بس همینطوری که کفه ترازو چطور پای نبالا میشه تلکالاییام و نداغلوها بین الناس حالا اللہ تعالی زندگی را عوض کرده او امروز مستضعف و توحید این آغار اللہ تعالی توانایی داده بیش مراجعه میکنه شم آروچه ووشا کرده من هیچی نداشت من چه حداد قرآن عظیم الشان توصیه به سلی رحم میکنه تعلیمات گهر بار محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که توصیبه رعایت خشامندی میکنه معنیش اینه که اگر کسی نسبت به تو کوتاهی هم کرده بود نسبت به تو بی مهری هم کرده بود به صحت تو توهین هم حتی کرده بود والذین یسلون مع امر الله سبحان الله این این راز پیروزی صحابه راز جاودانگی صحابه به جاودانگی تاریخ این بود که اینها نفسشون را زیر پا گذاشته بودند مست فرد مستضعفی بود که حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به حقوق میداد کمک بهش میکرد در اون جریان ناگواری که برای حرم پاک و مقدس و محبوبه محمد رسول الله ام المؤمنین آیشه صدیقه بگید رضی الله عنها رضی الله تعالی عنها در اون جریانی که منافقین و دشمنان قسم خورده اسلام که دیدن نمی با محمد رسول الله مبارزه بکنن نمیتوانند توانن با پیشرفت اسلام مقابله بکنن اپنن حد اغل نشینه که محمد رسول الله آزار و عذیت که برسانه گفت حالا که عاجز شدیم و نمیتوانیم او را به قتل برسانیم نمیتوانیم او را به شهادت برسانیم حالا که این دینش روز به روز داره پیشرفت میکنه و ترقی میکنه و ریشه میزنه و داره همه این دنیا را شاخ و برگ و تنه و ریشه ای اسلام داره دنیا را در مینوردد و در هم میکوبد حد اقلش اینه که پیامبر را آزار و اذیت برسانیم لَتَرَاي آذار رساندن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلام و برای آزورده خاطر کردن حضرت رسول صلی الله علیه و سلام و حضرت ام المؤمنین صدیقه طاهره رضی الله تعالی عنها به حضرت عایشه اتهام زدند مسته مسلمان مؤمن خالص هم فری خطبه همین دشمنان هم شد قافل فریب خورد الله تبارک و تعالی از کیان محمد رسول الله از ناموس حضرت رسول صلی الله علیه وسلم خدا دفاع کرد آیا نازل کرد درات حضرت عایشه صدیقه را تا قیام قیامت در قرآن عظیم الشان مطرح کرد گفت اون سردمداران کفر و اون اگرانی که این توت عرب بنیان گذاری کرده بودن خدا گفت حسابشون با من مسلمانانی که فریب خوردن دستور داد الله تبارک تاله که این را شلق بزنید آیا مسلمانی که اشتباهاً گون این دشمنان را خورده بود مستح بود حضرت مستح حقوق بگیره حضرت ابو بکر صدیق گاهی دوتا مسلمان را دعوت به صلح و سازش میدیم دعوت به گذشت میدیم هم مسلمانه شیخ مولای صاحب اگر من دوزو تا صد ورسو چین هم گزشت نکریم علی عیاضی بالله چرا مسلمان اینجوری گاهی در یک لحظه شکار نفس شیطان بشه چرا مغلوب غریزه بشه چرا مغلوب نفس خودش بشه حضرت ابوبکر صدیق تصمیم میگیره به مستحق کمک نکنه الله تبارک و تعالی توصی میکنه کنه آ مالدار ابو ابوبکر صدیق احسان پروردگار رو بیاد بیار که این مال رو در اختیارت گذاشته مال مال تو نیست مال خداست در اختیارت رو گذاشته حق نداری بگی من به این مسکین به این خیشاون به این کسی که با تو صلح رحمی داره و خیشاوندی داره و حالا دوچاره لغزشی شده دوچاره اشتباهی شده بگی من دیگه باش کمک نمیکنم کنم بلا فاصله حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حرفش رو پس میگیره. مفنس کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر میگوید این صدیق به او میگوید کہ این وزیر من در بهشت به او میگوید کہ من نیکی های همه دنیا را پاسخ دادم نتوانستم نیکی های حضرت ابوبکر در دنیا جبران و مقافات بکرم اللہ تبارک و تعالی پاداش او را به او عنایت بکنه ابو بکر این انسانی بود بالاترین مقام را داره قدرت داره پدر خانوم محمد رسول الله مورد احترام و اقرام جامعه بعد از انبیا افضل بشر حرفی میزنه دستور رب میات بلا فصل عقد نشینی میکنه حقوق حضرت مستقر بر قرار میکنه قران فن والذین يصلون ما امر الله به ان يوصل مسلمان اونه که در باب خیشاوندی و سلح رحم خیشاوندی را برقرار بکنه سلح رحم را برقرار بکنه به پدر، به مادر، به برادر، به خیشاوندان به همسایه، به شریک همه اونهایی که باید این انسان در مقابل اونها مسئولیت داره که نیکی بکنه با اونها نیکی بکنه باقیه آیه بهمونه الله اگر اللہ تعالی حیاتی فرصتی وقتی ایجاد شد خدمت شما بیان می کنم دو تا مطلب را خدمت شما عرض می کنم مطلب اول این که حال الان پایان سال تحصیلی است و بچه های شما فرزندان شما نیاز به کمک نیاز به مراقبت دارن نیاز دارن که شما اینها را کمک بکنید هر پدر و مادری با فرزندش کمک بکنه فضای آرامی برای بچه هایتون به وجود بیارید تا اینها بتونن درسایشون رو به درسایشون رسیدگی بکنن در امتحانات قبول بشن بچه ها را تشویق بکنید بچه ها را سرخورده نکنید بگی که این بعد در طول سال درس نخونده حالا میخواد چی بشه نه بچه هایتون را کمک بکنید اینها یادگارانی شماهند اینا این سمار قمری من شماهند ولی در این فصل امتحانات سعی بکنید فضای آرامی غذای مناسبی تشویق ترغیب رسیدگی سرکشی نیاز داشتن معلمی برایشون بگیرید تا درسشون جبران بشه کمبودشون جبران بشه و ان الله بعد از تعطیلات هم سعی بکنید که الان این بچه این درس‌ها رو قبول بشه که در تعطیلات دغدغه تجدیدی و در های دیگر نداشته باشید همگی در اون سه ماه فرصتی ایجاد میشه تا شما بتوانید برای فرزندانتون برنامه‌ریزی بکنید که اونها دین یاد بگیرن، اونها قرآن یاد بگیرن، اونها هنری یاد بگیرن، اونها خطی یاد بگیرن، اونها زبانی یاد بگیرن، با هنری یاد بگیرن این ارز اول منه که در این مناسبت پایان سال تحصیلی مدارس دولتی و مدارس عصری نسبت به بچه‌هایتون توجه بکنید و نکته دیگری که من خدمت شما عرض می‌کنم اون رسیدگی به مجموعه خانواده هست. بعضی از رسومات نامناسب در جامعه ما متاسفانه رسوخ پیدا کرده. یکی از این رفتارهای ناهنجار و نامناسب و در واقع فرهنگ غیر دینی که رسوخ پیدا کرده اون اینه که روز پنجشنبه که میرسه ماشاءالله اتوبوس ها پر از زنان وانت ها پر از زن سرا زیره به قبرستان روز پنجشنبه شده و این میخواد که کجا گفته که ما این پنجشنبه تا پنجشنبه دیگر بالاخره مرده پرست بشیم و بعد بریم اونجا گلاب شیشه گلاب بشکنه گلاب را میریزه سر قبر شیشه را میشکنه و اونجا سر رای مردم شیشه باید تو پای مردم، به تو ماشین مردم رو پنچر بکنه. در حالی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از شوابهای ایمان فرمود امام توتال از آن اثر راه مردم، مردم خار خاشک رژام میکنه حالا ماشاءالله الله شیشه گلاب ریخته و تب خاکی باید پای کسی زخمی بشه، کفش کسی سوراخ بشه، ماشین کسی پنچر بشه. این یک طرف و این ما در گرامی این دختر گرامی این خواهر محترمه که اونجا میره نه حجابی را رعایت میکنه نه دستور شریعت را رعایت میکنه یکی بر سر صورت میزنه و یکی نوحه خانی میکنه و یکی دیگر ماشاءالله اونجا یه عده هم نشستن قرآن عظیم الشان را تحقیر میکنه از این قبر به اون قبر از اون قبر به اون قبر و این بیچاره مسلمان هم فکر میکنه که ثواب همیشه 10000 و 5000 آره دو 2000 تا پونیش سخت کار صحیح نیست برادران عزیز ما باید دین را اونطوری که هست باید بفهمیم دین را اونطوری که قرآن به ما معرفی میکنه اونطوری که محمد رسول الله به ما معرفی میکنه و لهذا من خدمت شما عرضم اینه توصیه اینه که رفتن هر پنج شنبه به قبرستان هیچ ریشه دینی نداره هیچ ریشه فقهی نداره بله کسی میخواهد بر سر قبر پدرش بر سر قبر مادرش بر سر اصلا طور کل قبرستان را چشمش بیفته و بیاد آخرت بیفته اشکال نداره مادر خودش را خواهر خودش را همسر خودش را محرم خودش را در یه فرصت مناسبی لازم نیست من بعد زور پنکشن بی هر وقتی انسان مرده ای را یاد بکنه و دعای خیری بکنه و در هر جا الله قبول میکنه حالا اگر کسی میخواد که چشمش هم به بی قبرستان بیفته دلش بلاخره بیدار بشه در یه فرصت مناسبی در خلوت همراه ما محرم با رعایت شعونات اسلامی با رعایت اصول شر این کار انجام بده و الا شما تصور بکنید که وقتی اسلام توصیه کرده که زنان نماز در خانه اولاده را به جای اینکه به مسجد بیاید اون وقت چطور اجازه میده که یک زن بیگانه یک زن اجنبی سوار تاکسی بشه سوار وانت بشه سوار اتوبوس بشه آیا اللہ الله میره برای قبرستان پاتیا کجای است؟ این حق من شماست که باید مادران و خوهران من را آگاه بکنید یا در جشن عروسی ها متاسفانه خبرهای بسیار ناگوار زشت و نازیبا بالاخست که حالا این قبلا یک تکی دوربین بود و بلاخره فیلم برداری حالا تو جیب هر کسی یک دوربین گذاشته آه موبایل گذاشته و بلاخره تمام حرکات و سکانات اون ظاهر قضیه که اونجا مردی هم وجود نداره همه زنن اما اون زن فیلم میگیره، اون زن فیلم میگیره، اون دختر فیلم میگیره و فردا این فیلم ها کجا کجا پخش نمیشن به دست نامحرم میوفته، به دست آدم های فاسد میوفته به دست آدم های بیدین میوفته و با این وضعیت غیرت مسلمان خدشدار میشه، دخدار میشه ولی باید مادران و خواهران ما وقتی در جشن عروسی شرکت میکنن اول باید مراقبه افتشون مراقب حیائشون مراقب غیرتشون مراقب ایمانشون هم خودشون و هم برادران عزیز و محارم اونها و سرپرست خانواده پدر برادر فرزند باید مواظب باشند که در جشنهای عروسی فاسد در جشنهای عروسی لاعبالی در جشنهایی که در اونجا گناه معصیت انجام میگیره نباید شرکت بکنه لا طاعت پیغمبر میفرن لا طاعت مخلوقی فی معسییت الخالق جایی که خدا نفرمانی می شود نباید انسان اینجا حضور پیدا بکنه نباید در چنین جشنی نباید در چنین عروسی نباید در چنین مراسم حضور پیدا بکنه ما باید سعی بکنیم فرهند سازی بکنیم و این مسائل را اصلاح بکنیم. خیلی بده خیلی گنااس و خیلی زشت برای غیرتی یک مسلمان که الایاسم الله مادر او خواهر او دختر او با لباس های آراسته و لباس های مزین و با سر صورت آرایه شده بلا تشوی با زیورالات بالاخره حالا آژانسی پیدا شده همینجا تو خانه نشسته زنگ زن آژانس میاد یک نفر راننده آژانس خواهر مسلمان هم میره بازار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به شدت نکوهش کردن بنده عرض نمی کنم محمد رسول الله فرمود هیچ جایی یک زن و یک مرد در کنار هم قرار نمی گیرند زن و مرد نامحرم کسی سگومی شیطانه خیلی از حوادثی که بعد ناهنجاری اجتماعی تعبیر میشن خیلی از این حوادث در اثر اینه که شاید مسلمان اصول اسلام را و اصول و دستور شریعت را رعایت نمی کنه وقتی مسلمان دختر مسلمان، خواهر مسلمان، مرد مسلمان، زن مسلمان اصول و دستورات شریعت را رعایت بکنه حجاب رعایت بشه، سطر رعایت بشه اسلام گفته که زن نباید نامحرم، نباید به تنهایی با مرد نامحرم سوار بشه این وقتی رعایت بشن، خیلی از مشکلات پیش نمی آید ولی اینا مسائلی هستن که حضرت مولانا حفظه الله در هفته گذشته هم یادآوری کردن و گفتن که فرزندانتون را بالاخره به تنهایی نفرستید کسی فرزندش را دخترش را نه تنها به این خاطر که ممکنه دوستی پیدا بشه و جسم او را به بلکه به خاطر اینکه دوستی ممکنه پیدا بشه و ایمان اونها را از بین ببرن افت اونها را از بین ببرن شخصیت اونها را از بین ببرن الا اعوذ بالله و غیرت یک مسلمان داغدار نشه به این خاطر به همین خاطر از که سفر مقدس حج که بر زن و مرد مسلمان توانمند و مستطیع فرضه اما اسلام دستور داده که اگر زنی میخواد برای سفر حج بره باید محرمی داشته باشه اگر محرمی نداشته باشد ولی اینکه همه ای امکانات را داشته باشد میگه بر این زن حج فرض نیست چون محرم همراهی خودش نداره دستورات اسلام این که دستور اسلام میده بر اساس پیشگیری اینا رو ما باید دقت بکنیم اینا را مسلمان باید توجه بکنه که اسلام چرا این دستورهای اکید را داده و در رابطه با اون قضیه‌ای که حضرت شیخ الاسلام حفظه الله در هفته گذشته اداری فرمودند در رابطه با موضوع بعضی شکایت‌هایی که نسبت به زنان رسیده بود و میرسید و همونطوری که حضرت مولانا فرمودند باید مسائل پیگیری بشه و مسائل مستند پیگیری بشه وقتی یک عزیزی بخواد مسئله ای را یک جایی مطرح بکنه باید برای اون غزیه سند ارائه بکنه مدرک ارائه بکنه تنها فلانی گفته فلانی شنیده اینجوری گفته این کافی نیست دوم اینکه باید جامعه از حق خودش اشتفا بکنه اگر یک جایی اجحافی میبیند شخصی اجحاف کرده فردی اجهاف کرده مامور اجهاف کرده نگویند گاهی تعبیر ممکن چرا شکایت نمی‌کنی شی آخر شکایت بکنم بلای جانی درست میشه کی حوصله داره هر روز بره دادگاه کی حوصله داره این این یعنی چی این یعنی جرم پروری این یعنی عادت دادن انسان ها به ظلم این یعنی ظلم پذیری و خدا همونطوری که ظالم را نمیپذیرد ظلم پذیر را هم خدا دوست نداره ولی وقتی یک کسی را خدا ناخسته خدا ن ناخست فلان معمور گرفت و زد و کوب کرد و شالله اوس فلان کرد بره شکایت بکنه. خودش شکایت بکنه رسیدگی رو پیش بنده سه چهار ما قبل کسی آمد گفت آمنهفش تا گالون خالی گازوئیل داشتم و بالاخره منه گرفتن تجعی که کتک خوردم وقتی آوردن تو دفتر من این فکس رو دوخته بودن بخیه زده بودن دندان رو شکسته بودن گفت منه بردن. در یک اداره و زن که بگو مواد مخدر چیکار من گفتم بابا من هیچ مواد مخدر ندارم تمام زندگی این gallon های خالص بالاخره اومد و بهش گفتیم شکایت اون رفته بود سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایت کرده بود همین همین انسان اتفاقا اهل سراوان هم بود همین انسان لحظه اول که من گفتم گفت قف مارو صاحب حالا که من با فقو دندان شکسته اومدم بیرون ممکنه شکایت بکنم اون گفتم نه اینجوری نیست شما برو شکایت کن ما پیگیری میکنیم حمایتت میکنیم به نمایندگان مجلس هم زنگ زدیم و بالاخره اون مامور خاطی و متخلف رو گرفتند اب بعد چند نفر پنجا نفر ریش سفید بفرست خانه اینو خانه اون به جای خود ولی من ارزم اینه که جامعه باید از حقوق خودش دفاع بخونه وقتی یک تخطی و یک ناهنجاری میبینه صد خودش پایین نندازه بگه حالا من ندیدم نخیر ما باید اگر یک موردی را چه از شخصی دیدیم چه از شخص حقیقی دیدیم چه از شخص حقوقی دیدیم باید از حقوقمون دفاع بکنیم شکایت بکنیم به مسئولین برسانیم به علما برسانیم به جاهای دیگه برسانیم شما مطمئن باشید که من جد و وجد هر کسی تلاش میکند خواستن توانستن و تا این لحظه که من خدمت شما عرض میکنم و تماسیم که با حضرت مولانا هم پیگیری قضیه بود فرمودن شما پیش شما توی این مدت کسی مراجعه کرده یا نکرده من ارز کردم یکی دو نفر مراجعه کردن اما نه مراجعه مستند مراجعاتی گفت ما شنیدیم این حرفه را گفتم که شما شنیدید بینید سندش رو هم پیدا بکنید سرچشمه را هم پیدا بکنید و لذا توی این مدت کسی مراجعه اگر واقعا برای کسی اتفاقی افتاده برای خانواده های برای افرادی و بیاین شکایت بکنن شما مطمئن باشید که کار اون انسان ها تا اونجایی که امکان داشته باشه هم همونطوری که حضرت شیخ الاسلام فرمودن هم از مقامات مسئول استان و هم از مقامات و مسئولین کشور پیگیری خواهد شد هیچ کسی حق نداره که در جامعه استراب ایجاد بکنه در جامعه استرس ایجاد بکنه فضای ناامنی را در جامعه دامن بزنه که یک زن مسلمان یک مادر مسلمان یک جوان یک دختر احساس سنه بکنه این کسی که این احساس را به وجود میاره و کسانی که در مقابل اون خاموش بشن هر دو پیش خدا تبارک و تعالی مسئولن ولذا زمان عرضم اینه که چه در این موارد و چه در مواردی دیگه اگر کسی واقعا در حق او اجحافی شده مشکلاتی شده باید مشکلات را به سمع مسئولین برسانن و از انهای مختلف منتظر نمونن که هنیشه باید حتما از تریبون این وظیفه علما است که مشکلات و ناهمجاری ها رو به سمت مسئولین برسانن اما مردم هم ابزاری دارند که توانه و برد ابزار مردم و شکایت مردم به مراتب بیشتر خواهد بود الله توارک و تعالی این گفته ها و شنیده ها را به برگاه خودش قبول بفرماید زیبنده بود که در این مجموع و در این جلسه حضرت شیخ الاسلام بودن اما ما دلمون را به این خوشحال میکنیم که ایشون و همراهانشون سفرائی من شما هستن و همه از رب العالمین میخواییم که الله توارک و تعالی از دعاهای اونها و از عبادت اونها و از رحمتهای که در اون سرزمین مقدس الله توارک و تعالی نازل میکنه همه مارا بحرمن بگردانه و مارا جز محرومین نگردانه و آخر الدعوان ان الحمد نيات الوضاء وجب الشكر علينا مدعا لله داع ايها المبعوث فينا جيت بالامر المطاع جيت شاء